بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وخاتم النبيين واله وصحبه أجمعين اما بعد توزهمين درس از از شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم از کتاب امام تبريزي رحمه الله واسكنه فسيح جناته توزهمين باب هستيم از باب ان كتاب كتاب شمائل باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اون چیزی که در مورد دمپایی رسول الله, صل الله علیه الصلاه و السلام اومده باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اون چیزی که در مورد دمپایی رسول الله علیه الصلاه و السلام اومده در احادیث دمپایی مثل لباس عبادت نیست جز عادات نوعش شکلش جنسش از باشه چرم لاستیک هر چیزی مخاط باشه بله خب وصف این دمپایی رو ما میخوام بدونیم دمپایی که از رسول الله صلی اللہ علیه وسلم سلام ثابته که پوشیده از اون نوعش از نوع بافتش و دوختش که رسول الله صلی الله علیه وسلم خودش با دست خودش دمپایی خودش رو می‌دوخت نه چون عایشه رضی الله عنها اینو ما میخوام بدونیم چطور بوده و در احادیث چگونه وصف شده افتاد و مین حدیث امام ترمیزی رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داوود الطیالسی قال حدثنا همام عن قتاده قال قلت الانس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما قبلان ان حديث ده صحيح بخاري از اسنادش هیچ در صحتش ما نداریم قتاده میگه گفتم بن انس بن رسول الله عليه الصلاه والسلام دمپای رسول الله صلی الله عليه وسلم چگونه بود برای من گفت که دمپای رسول الله صلی الله عليه وسلم بود لهما قبلان قبال بنده دمپایی دو بنده بود دو تا بند دو تا تسمه دو تا سیر تناب حالا میخوای هر چی اسمش بذار ولی خب در اصطلاح امروزی خصوصا در جنوب ایران این اینجنین دمپایی واس میشه و دمپایی دو بند دو تا تناب داره دو تا ریسمان یا دو تا تسمه داره برای خودش از جلو به عقب حالا میاد این فقط بس به این دوتا تا تسمه رو داره میکنه که روی دمپای رسول الله علیه الصلاه و السلام بود. حالا فقط من از باب فایده بگم یعنی فرق بین قبال و شراک که میاد در حدیث بعدی معمولا قبال اون بندیه که طولیه تو دمپای ارزی نیست، طولیه از جلو میاد به عقب و این دو تا بند طوری بود که رسول الله علیه الصلاه و السلام انگشتان وسط پاش را در اون فرو می‌بردند. دو تا بند بود، دو تا سوراخ داشت جلو و دوتا سوراخ داشت عقب. اون دو تا سوراخ جلو در وسط بود نه برای انگشت بزرگ و انگشت شست نه برای انگشت وسطی و بغلیش دو تا سوراخ بعد اون دو تا حالا اون بندها را بگیم از جلو می اومد تا به پشت پای رسول الله علیه الصلاه و السلام اینها چیه قباله از جلو میاد به اون چیزی که ارزی روی اون قرار می گرفت از چرم از پوست گاو معمولا می ساختنش که دباغی هم گاهی می شده اون بهش میگن شراک ارزی روی پشت پا اومده از سمت راست به سمت چپ و مین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لنعالي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالاني مثنٍ شراكهما مثنٍ شراكهما إن حديث سونان من مواجههم هاس إن جوا ترميزهم بين الصندور والرد مكونه بحديث صحيح قال البنيام تاسيهش مكونه إن جوا حديث أناس بن المولك داش شيء إن حديث عبد الله بن عباس ميجي ياتك دم بوي رسول الله صلى الله عليه وسلم دو تبان داشت لقفله بباله متنی شراکهما متنی استثنی میاد یه چیزی را پشت رو بکنیم یعنی اون چرمه خصوصا که می اومده گفتیم ارزن روی پشت پا قرار می گرفته اون از یه طرف می اومده به طرف دیگه دوباره برمیگشته متنی شده یعنی معکوس شده روی همدیگر اون چرمه بخاطر اینکه زخیم بشه بخاطر اینکه پا را نگه بداره بخاطر اینکه محکم بشه اون دمپایی پا توشته کن نخوره. که سان پاتوش نخوره خود سان اینکه رسول الله صلی الله و سلام خب با این دمپایی جهاد میرفتن اونم پیاده از مدینه به مکه. حالا غیر از اون اومدنش از مکه به مدینه همه پیاده بوده و بوده هم که سواره باشه ولی خب پیاده رفتن رسول الله علیه, علیه و هم زیاد بوده. اون پیاده رویش حالا چه با دمپایی و گای هم بدون دمپایی رسول الله علیه, علیه و سلام با او برسد در مدینه قدم میزدند. خب پس الان اینجا وصف دمپایی رسول الله علیه, علیه و سلام که چگونه بوده حالا من تقریبیش طبا اون چیزی که در این دوتا حدیث اومده این اینجا رسمش کردم حالا هرچند که در بعض از موزه ها هم گذاشته شده که در جلوش نزدیک به هم دوتا سوراخ داشت که از اونجا اون دو تا بند یا اون دو تا تسمه یا سرر که بهش میگن از چر بودی یا هر چیزی دیگه که بافته شده می اومده به پشت پا از بغل حالا یا زری یا تولی بالاخره از بالا میماده به پایین بعد از وسطش هم اون چرم اون شرراغ که روی پشت پا می میده به خاطر اینکه اون دو تا بندها رو محکم نگه بداره داره که دمپایی توی پا محکم بمونه و گفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش با دست خودش می‌بافتند و خرازی می‌کردند دمپایی خودش با دست خودش با دست هفتاد و مین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال اخرج الينا انس مالك رضي الله عنه نعلين جرداوين لهما قبالان قال فحدثني ثابت بعد عن انس الله عنه انهما النبي صلى الله عليه وسلم حديث, حديث شما بن, بن مالك روزي رو برای ما اون هم وصفش بود که اون که خصوصا من گفتم روی پشت پا مو روش نبود یعنی چرمی بود چرم خصوصا چرم گاو که دباغي شده خالی از مو جرد یعنی بدون مو دباغي شده اون موها سوزانده شده بر روی اون چرم حالا برای قشنگیشه یا برای اینکه حالا گندیده نشه و الی آخر اینکه اگر کسیف شد راحت شخصه بشه پاک بشه حالا اسباب دیگری که این کار سبب میشد که انجام بدن یعنی این چرم ها برای ساده دختنش راحت دختنش برای نگهداریش و آخر یا ماندگاری بیشترش این رو میکردن با چرم آلا غیر از اون زیباییش یعنی اون چرمه را دباغي میکردم به خاطر این کارها که بعد میگه از وسط اون دمپایی که میبینه با چشمش خودش حساب نقطه همان میگه اون دمپایی که انس اوورد ما دیدیم از دمپایی رسول الله علیه و سلام دو تا بند داشت که گفتیم از جلو می اومد از وسط که اون دو تا تنابی اون دو تا بندی که میان انگشتان پای رسول الله علیه و واقع میشد از جلو به عقب اینجنین وصفی را داشت ادمپایی قال فحدثني ثابت بعد عن انس ثابت اهم اینجنین چیزی را از انس نقل میکنه که میگه که اون هم چیزی که عیساب بن تهمان دیده اون دمپایی رسول الله علیه و صلی سلام بودی خب خلاص اینجا مسئله هست دمپایی رسول الله علیه و سلام پیش انس بن ولک تو میکنه چرا برداشت بعد چرا هم نمیپوشه نگهداری کرده گذاشته تو خونه بعد ورده نشون, نشون داده صحابه رسول الله صلی علیه و سلام اون آثار رسول الله علیه و سلام از عراقش از آب دهنش، از آب وزوش، از پیراهنش، از موی سرش نگهداری می‌کردن و از باب تبرک تو آبی مثلا اون را میگذاشتن بعد از باب تبرک به مریض می‌دادن تا اون مریض شفا پیدا بکنه. اون موی رسول الله علیه و السلام یا همین دمپایی را در ظرفی می‌شستن چون آثار رسول الله علیه و السلام روی اون دمپایی بوده و به اون مریض یا اون مریض رو به اون آب می‌شستن یا می‌دادن که بنوشن. از باب تبرک این کارو می‌کردن و این کارم جایزه و تقریر رسول الله علیه و السلام برش است. صحابه مسابقه میدادن در آب که رسول الله صلی الله علیه و آله با وضو میگرفت که کدام یکی از اون آب بهره ببره در مقابل عرقش در مقابل مونهای رسول الله علیه و که همسران خود رسول الله علیه و سلم در منزل نگه می داشتن که خواهد اومد ولی این کار باغیر از رسول الله صلی علیه و جایز نیست فقط خاص رسول الله علیه و خاص آثار پیغمبره که بدنشون مبارکه و تقریر و تعییدی از خود رسول الله علیه و برای صحابه کلا انتهای باب این مسئله رو یک کم خواهیم کرد. فقط اینجا گفتم این اشاره رو فقط از باب اینکه چون در این حدیث یاد شده که انس نگهداری میکرد گفتم چرا نگهداری هفتاد و هشتمین حدیث. امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک قال حدثنا سعید بن ابي سعید المقبري عن عبيد بن جریج انه قال لابن عمر رضی الله عنهما: رایتك تلبس النعال السبتيه قال إِنِّي رَأَيْتُ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضا فيها فانا احب ان البسها قد ان جاء الله بن عمر رضي الله عنهما. ان حديثه بظن دار صحيح البخاري مسلم على الحاظ بر انك بن موی روی اون چرمی که در اون دمپایی هست اون موه سوزنده شده یا دباب شده دیگه موی روش نیست اون چرم صافه به اون چرمه سپتی گفته میشه که اینجا در این حدیث بهش اشاره شده. جردم بهش گفته میشه که اونجا داشتیم در حدیث قبلی حدیث سر نسب مالله که دمپایی را ورد که خالی از مو بود رد بود. اینجا هم سپتی اومده که هر دو تا به یک معنا هستن پس اینجا، ابن عمر دمپایی را پیش شده و این تابعی ازش سوال میپرسه دیدم که دمپایی که پوشیدی سپتی هست، یعنی چرمی هست. از پوست گاو که دباغی شده بدونه بعد ابن عمر رضی الله عنه ما بله من دیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم دمپایی پوشیده بود که موی روی اون چرم نبود. البته لیس فیها شعر، یعنی اون چرمی که در اون دمپایی با برده شده بود مو نداشت موری آن نبود. چرم دباغی شده بود. از همون سپتی که اینجا ابن عمر پوشیده. و دیدم که با همود دمپایی هم بزرگ می‌گیره و منم دوست دارم چنان شنوند دمپایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم پوشیده بپوشم خوشتان عبدالله بن عمر معروفه در هر بر اینکه کل کاراش مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه حتی جایی بخوابه که رسول الله صلی الله علیه و سلم خوابیده حتی که توی سفر زیر درختی خوابیده بر آنجا بخوابه از محبتش بررسال الله صلی الله علیه و سلم نه عبدالله بن عمر حتی آناس آناس میگه که قطعا میاد در بحث غزای رسول الله علیه صلی علیه و سلم دیدم که در غزه دنبال کدوم می‌گرده. بد فهمیدم که رسول الله ص ص هم اون کدی که تو غذا هست رو دوست داره من هم دوست دارم چیزی که رسول الله ص ص اون را دوست داشت و اینجا هم عبد الله ابن عمر همین قضیه رو مطرح میکنه چون رسول الله ص ص دوست داشت این چنیدن پویی و این چنیم خودش من هم می می‌بافتن می‌دوختن منم دوست دارم که دمپاییم مثل دمپای رسول الله علیه الص و سلام باشه اینجا فقط یک مسئله هست و اونم اینکه که عبد الله ابن عمر میگه این دمپای را رسول الله ص ص می‌پوشید و وضو می‌گرفت در اون دمپای یعنی چی وضو می‌گرفت در اون دمپای یعنی با اون دمپویی پاهاشو میشست احتمالش هست و یا اینکه پاشو میشست و بعد اون دمپایی رو تو پاش میکن. این هم هست چون وارد از رسول خدا صلی الله علیه و وسلم که وضو میگرفتن بعد دمپایی را میپوشیدن و با, با دمپایی نماز میخوندن و توصیه هم میکردن به نماز در دمپایی در صحیح که دمپایی پاک باشه تاهر باشه و اون جایی که نماز میخونیم دیگه فرشی نباشه که دیگه با اون دمپایی ما کسی باشه. تو مسیری جایی رسول الله روی خاکی اینا با بادمپایی نماز میخونن و توصیه میکردن بادمپایی نماز خونده بشه برای چی؟ چون یهود در دمپایی نماز نمیخونن. از باب مخالفت. یک سنته، یک سنته. یعنی شما گاهی با کفشتون یا دمپاییتون نماز بخونید، شما یک کار مصاحبه سنتی را انجام دادید. چون رسول الله علیه و السلام بهش توصیه کردن خوشتان اینکه مخالفت یهود درش هست. هفتادو نهومين حديث امام الترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالا من حديث أبي هريرة الله رضي الله عنه مثل حديث أناس وابن عباس قبال داش قفتين بانداش وندم في رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا مثل عنده حديث صحيح هاشتاد مين حديث امام الترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فين علي مخصوفتين يصلي این علینی مخسوفتين حدیث یک اشکال اسنادی داره سودی اینجا داره میگه این حدیث را کسی به من گفته که حدثني من سمع عمرو بن حريف کسی که از عمرو بن حریف شنیده یعنی مبهم رووی مشخص نیست ولی کن این حدیث تقویت میشه با روایت دیگر در مصدع احمد بخاطر خاطر همین قابلیت تحسین رو داره این اسناد هرچند که این راوی مبهم هست در این اسناد که اسمش یاد نشود. حالا حسن در طبقه بالا تساهل میشه از تابعین و کبار تابعین تساهل میشه یعنی اون روایت قابلیت تقویت رو داره میتونه به درجه حسن برسه مثل این روایت روایت مرسل هم اینطور که الله خواهیم داشت این حدیث هم از جمله اون احادیثی که قابلیت تحسین رو داره و برای خود شاهدی هست داره با اسناد دیگر که این روایت رو تقویت میکنه عمرو بن میگوید دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در دمپایی نماز میکنه. اون دمپایی هم خررازی شده بود یعنی دخته شده بود بافته شده بود اون دمپایی، مخصوف بود یعنی دخته شده بود خرازی شده بود معمولا اون بندها اون تسمه ها را با هم دیگر بافتن، اون چیزی که حالا در کتاب های یاد شده بافتن اون دوتا بندها که نر بشه انات آف وزیر بشه از جلو به عقب طولی و اون چیزی که ارزی بود معمولا چرم یک دست بود ولی از اون بندها معمولا سعی می‌کردن نرم استفاده بکنن که که به پا آسیبی نرسونه و پاها ضربه نبینه امین عایشه رضی الله عنها میگه از طرزی کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم دمپوش میگه در مستدر امام احمد داریم که صحیحه میگه سوال میشه ما کنند نبی یوسف سم یصنا افی بیته چیکار میکرد رسول هستم در منزل از امونی آشه میشه قالت کما یصنا وحده هم همون کاری که شما انجام میدید یخصف و نعله یخصف و نعله یعنی دنپای خودش را میدوخت خرازی میکرد و یورقع و ثوبه پینی میزد روی جامعه لباسش میدوخت اگر پاره میشود اون لباسش لباسش با دست خودش میدوخت این از کارهایی هست که رسول الله آله انجام بیده بعیب نیست مرد نه لباسش رو بشوره نه تباخی بکنه و نه هم اینکه که خودش را و یا لباس خودش را بدوزه کار برای مرد عار نیست بلکه عار چیه؟ گدا شدن دست راست شدن اینون. این عاره این زشته از جمعه مسائلی که ما در این حدیث داریم نماز رسول الله صلی اللہ علیہ در دنپایی که گفتیم سنتی از سنتا هست خصوصا اینکه مخالفت یهود درش هست و رسول الله صلی اللہ علیہ به مخالفت یهود به ما توصیه کردند هشتاد و یکمین حدیث نمام ترمیدی رحمه الله میگوید حدثنا اسحاق بن موسی علم قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل الواحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا أشتد دو دومين حديث إمام الترمذي رحمه الله مقياه حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه إن دوتا حديث بهم سورته بودت إسنادك إن جاء إمام الترمذي رحمه الله يادميكونه این دو تا حدیث اینجا روش پوشیدن دمپایی را به ما رسول الله صلی الله و یاد میدن اونجا نوع دمپایی داشتیم چطوری بود وصفش چگونه بود اینجا روش پوشیدن دمپایی میشه هم انسان با یک دمپایی راه بره اجازه داریم نداریم حکمش حرام حلاله ابو هرره رضی الله عنه میگه که شنیدم رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند لا يمشي الناحدكم في نعل واحده نهی کرده با یک دمپایی نریدا یک دمپایی نپوشه تو یه پا دو دمپایی باشه یه پای دیگه دمپایی نباشه لِيُنْعِلَهُمَا جَمِيعًا يا اينكه هر دو تا بو پوشه او لِيُحْفِهِما جَمِيعًا يا اينكه هر دو پا را برهنه بکنه يا هر دو پا بپوشونه با دمپایی هر دو تا پاشو تو دمپایی بکنه یا اینکه هر دو تا پا برهنه اما اینکه با یک پا با, با دمپایی بره و پای دیگر برهنه این اجازه اش ما نداريم خصوصا اينكه رسول الله صل الله عليه و سلم در حديث ديگر ميفرميان ان الشيطان يمشي بالنعله الواحده شيطان هست که با یک دمپايي راه ميره شيطان هست که با یک دمپايي راه میره. اینینه نباید شبیه شیطان باشیم در پوشیدن دمپایی علتش هم به ما مشخص کرده الان اینجا ما داریم در بحث دمپایی پوشیدن از آدابش اینکه تو فقط تو یک پا مون نکنید پر دو تا پا بکنیم. علت اینکه تو یک پا نباشه تنهایی به خاطر اینکه شباهت شیطان نباشه تکیه دادن با کف دست چپم و قبم همینطور به خاطر اینکه شباهت به شیطان نباشه با دست چپ دادن و خوردن آشامیدن هم همینطور به خاطر اینکه شباهت به شیطانه توش و ما ممنوعیم از این کاری که شبیه کار شیطان رو ما انجام بدیم از تشبه به شیطان ما منع شدیم از تشبه به شیطان ما منع شدیم یکی از حکمت‌های این حدیث اینه کارمون شبیه کار شیطان نباشه کارمون شبیه کار شیطان نباشه در تکیه دادن چه در خوردن، آشامیدن چه در گرفتن از دست کسی این کار کار شیطانه است بخاطر همین شیخ محمد حسین عباد میگه و تشبه به شیطانم حرامه و این کار فعل غیر از اینکه رسول الله صلی الله علیه و نهیش کردند چه در دمپایی پوشیدن که در یک پا فقط نباشه که با یک پا ما بریم چه در دردم پوشیدن و چه در غذا خوردن آشامیدن یا گرفتن و یه چیزی را به دست کسی میدی چون کار شیطانه تشبه به شیطان در اون کار حرامه این یکی از علت‌ها این یکی از علت‌ها علت دومی که یاد میشه ابن قیمم یاد می‌کنه این مسئله میگه که چون در این کار ظلم به بدنه ظلمه به بدنه تو احسان کردی خوبی کردی در حق یک پات یک قسمت از جسمت و قسمت دیگر را در حقش زلم کردی و ما از ظلم ممنوعیم و این کار نه که به نسبت به نسبت دیگر چیزها آمده سر مو میخوای اکرام بکنی حق نداری قزع بکنی دور سرت را بتراشی وسط سرت را بذاری یا موهات رو کامل رها کن یا موهات رو کامل بتراش زل نکن کارت اعتدال درش باشه همچنین در بحث نشستن در زیر سایه و روشنایی جایی که سایه و روشنایی هست نور آفتاب یه جایی میزنه یه جا از یه طرف هم دیوار سایه انداخته ما بین سایه و نور نشستن وسط نشستن ظلم به قسمتی از بدن قسمتی نور می‌بینه قسمتی نیبینه ما از این کار منع شدیم چون اعتدال درش نیست ابن قیم میگه ما از ظلم من شدیم و از هر کاری که خلاف عدالت باشه حتی اگر در حق بدن ما باشه حتی اگر در حق بدن ما باشه ما اجازه ظلم نداریم بدن به خودمون نه به کسی دیگه جسم امانت به دست ما و ما وظیفه داریم که این و این جان را ازش نگهداری بکنیم محافظت بکنیم این مسئله را منقیه مفصل در کتاب تحفه المولود میاره دیگه حالا من فقط اشاره بهش کردن یک مسئله خیلی مهمی هست اینجا شیخ بن باز رحمه الله میگه الله قبرش رو همیشه روشن نگه داره و ازش راضی و خوشنود باشه شیخ بن باز رحمه الله شخصی ازش سوال میپرسه شخصی از مسجد اومده بیرون دمپایش رو میجلو بپاش یا از خونه اومده بیرون یکی دمپایش اینجاست یکی هم اونور افتاده سوال میشه شیخ ابن باز رحمه الله که درسته من اینجا دمپوی را بپوشم با یک پام بعد برم جلوتر اون دمپوی را بپوشم با اون پای دیگر یکان چند تا قدم جلوتر شیخ ابن باز رحمه الله حرف جالبی میزنه میگه اینستطعت اللا تخالف سنت ولو بخطوة واحدة ففعل اگر تو یک قدمم تونستی با سنت مخالفت نکنی مخالفت نکن یک قدم تو یک قدمتم مگر تونستی که مخالفت سنت نکنی مخالف سنت نکو یک قدمت هم همون یک قدمت خیلیه همون یک قدمت هم خیلیه رسول الله صلی الله علیه و داره بهت میگه این که یه پاره تو دمپایی بکنی پای رو برهنه بکنی نه اجازش نداری یا این گفتم از فهم دقیق و ظریف علمامونه لمس قشنگشون و برداشت درست و صحیحی که از احادیث رسول الله صلی الله علیه و داره الله جل و در قران میگه فلیحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه و يصيبهم عذاب الیم فليحذر الذين يخالفون هر کسی که مخالفت میکنه بر حذر باشه هر کسی که مخالفت میکنه در کارش گفتارش با رسول الله صلی الله علیه و آله هر کسی فليحذر الذين يخالفون انامره ان تصيبهم فتنه كدوشره فتنه بشه او يصيبهم عذاب اليم یعنی دوشره عذابی دردناک بشه بر حذر باش اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله داره تو رو من میکنه نکن. بگو چش صحابی داره غذا میخوره با دستش میگه با دست راست میخور میگه نمیتونم قال مستطعت نتونی دستش فلج شد چرا نمیتونی چو غارتو رسول الله صلی الله علیه و آله حرف من جنین. واحد انسان برخزر باشه، حرف رسول الله صلی الله علیه و آله چش بزاره این ادب این ادب با وحی الهیه. الله حم جل و علا بهمون توصیه کرده در قرآن، اما آتاکم الرسول فخذوه و اما آتاکم الرسول هر چیزی که پیغمبر بیتون میگه فخذوه بگیرید، اما نهاکم عنه فنتهو، چیزی نهیته که دیگه دست بکشید، اما نهاکم عنه فنتهو خلاص. فساله بدیت بهوننا تراش جامعه نمیشه، نمیدونم پدرم نمیزاره، مادرم نمیزاره. لا طاعت للمخلوق في معصيه الخالق. همتک رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید او كما قال علیه الصلاه و السلام ما اجازه نداریم بخاطر مخلوقی بخاطر هوای نفسمون مخالفت با خالقمون بکنی ما فریندهگارمون بکنی اون مراافریده و اونم امر و میکنه پیغمبرش هم مبلغه و من یطیع فقط عطاها اطاع الله اطاعت الرسول صلی الله علیه و سلم اطاعت تسقیه از الله جل جلاله اینجاست رسول الله صلی و سلم داره تو رو من میکنه از این کار بگو چش این آدابه که رسول الله علیه و السلام به یاد میده در این احادیث یعنی فقط مجرد نوع دامپویی نیست بلکه آداب احکام روش زندگی هست که یادمون میده رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها روزمره هست شما فقط به مسجد اومدنتون ورود و خروج از مسجد حساب بکن و ورود خروج خروجت به منزلم حساب بکن 20 بار حداقل برای این کار تون دمپو یا کفش رو و بیرون میاری چقدر ثواب گیرت میاد به خاطر اقتداد به رسول الله صلی الله علیه و سلم در نحوه پوشیدن و نوع پوشیدن این کار را لله انجام بده چون رسول الله صلی الله علیه و این اینجوری پوشیدن با پای راست بپوشی با پای چپ بیرون بیا دلالا چنانچه بقیه آداب را در ادامه این حدیث خواهیم خود اینا همه اجر پاداشه وقتی که یک از اسباب علم انجام بدید یعنی شما مجرده این نیست که الان شما چند تا آداب بخونید نه تفاوتم با دیگران اینه که اگر الان این کارو کردید با علم انجام دارید میدید با پای راست بیرون آوردید با حدیث رسول الله علیه و آله چقدر ثواب بدیت میاد شما هش میبرید ولی اون کسی که نه همینطوری انجام میده و... و نمیدونه از حکمتش نمیدونه از آدابش اون اجر و پاداشی نداره ولی مؤمن نه مؤمن همه جای زندگیشیه بهره هست ثوابه پاداشه و این پاداشه که الله جل و بهمون دستور میده که بهراش مسارعت بکنیم مسابقه داشته باشیم اسرعوا الى مغفره ربكم سارع ان <سع> चीजها انسان به طرفش بشتابه بواد شتابان به طرفش بیاد این ها را یاد بگیره نبات کوتاهی بکنه همین سبب نجاتمون میشه چنانچه ما اشاره کردیم در درس قبل یک دانه خورما هست یک زنی را بهشتی میکنه یک دانه خورما نصف میکنه یکی بگیم بچهش یکی بگیم بچهش یک دانه خورما نس کردن صدقه میشه که زنه بهشتی بشه یک دانه خورما نس کرده یک صدقه در حق فرزن کم نگیریم اون عمل نیکیمون عمل صالحمون أشتاد السوومين حديث امام الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحده جابر بن عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى كارده هذين كم مردي مرد كون مخاطبينش إش مرد بودان وإلا إن حكت هم براي مرد هم براي زال ناهي كارده كشخصي او یمشی في نعله واحده يا اینکه دمپایی را با یک پا بپوشه و یک پای دیگر برهنه و راه بره این را رسول الله صلی الله علیه و سلام نهی کردن این توصیه رسول الله علیه و در نحوه راه رفتن با دمپایی به همین قد اکتفا میکنیم سبحانك الله و الحمد لك سبحان الله والحمد الله علی محمد و علی محمد